زوره بگرن دور که بخشا یاندو، با رحمت است. با رحمت است. <تصفيق> <تصفيق> الف لام <مي> قرآن بی تردید راهنمای قابل اعتمادی است برای آنها که حرمت خداوند را نگاه می‌دارند. که که به عالم نادیده ایمان دارند نماز میگذارند و از آنچه روزیشان کرده این دیگران را بهرهمند می کنند همان که به تمامی راهنمایی های خداوند آنچه بر تو نازل شده و آنچه بر پیامبران قبل از تو نازل شده ایمان دارند و آخرت را به یقین باور دارند این چونین افرادی در جریان هدایت الهیشان سیر می کنند و بیشک اینان رستگاران حقیقی هست ای پیامبر آنهایی که کفر و ناسپاسی سراسر وجودشان را گرفته چه از عاقبت کار بر حضرشان داری و چه نداری برایشان یکسان است و حقایق را باورده می کنند و به خاطر ناسپاسیشان خداوند مرکز ادراک و فهم و شنواییشان را بسته است و بر روی چشمهایشان پردهای زخیم کشیده تا هیچ حقیقت آرامش بخشی را حس نکنند و براستی که چه عذاب است برای آنان و عده از مردم میگویند ما به خدا ایمان داریم و پذیرفته که روز حسابرسی وجود دارد در حالی که چون این ایمانی در وجودشان نیست تصور میکنند با این اقرار بیمحتوی خدا و اهل ایمان را فرید میدهند، اما کسی جز خودشان را فرید ندادند شعور درکش را ندارند مرکز ادراک و فهمشان آشفته و بیمار است و خداوند این بیماری را وقیمتر کرده و به خاطر دروغگوی و نیرنگشان عذابی دردناک در انتظار آنهاست وقتی به آنها گفته شود تباقی و پلیدی را در زمین ترویج نکنید مغرورانه جواب دهند ما دروستگار و خیراندیشی، بدانید و آگاه باشید که آنها مفسدند و چنان غافلند که تا خودشان هم حس نمی کنند. و انگامی که به آنها گفته شود شما هم مثل مردم عادی بی ایمان بیاورید مغرورانه جواب دهند ما مثل بیخردان ایمان بیاوریم بدانید آنها خود بیخردند هرچند که نمی دانند و هنگامی که با اهل ایمان و حقیقت برخورد کنند گویند ما خدا و حقایق هستی را باور کردیم و وقتی با شیاطین درونی و بیرونی خود خلط می‌کنند می‌گویند ما به واقع با شما هستیم و اهل ایمان را مسخره می‌کنیم خبر ندارند این خداست که آنها را مسخره می‌کند و چنان در ظلمت تقیان و کفرشان راهیشان می‌کند تا همیشه سرگردان بمانند این دسته کسانی‌اند که هستی خود را داده و به جای هدایت گمراهی و حیرانه خریدند. بیشک تجارتشان سودی ندارد و هرگز به راه نجات و آرامش دست نخواهند بیافت. حکایت آنها مثل کسی است که آتش میافروزد تا با نور آن پیرامونش را ببیند تا به زعم خود آگاهانه تر بر تقیانشان بیافزایند. اما چون اطراف روشن شود خدا آن نور را از آنها میگیرد و نابینا در ظلمات رهایشان میکند نور و دیدن حقیقت بر آنان حرام است هیچ ندای حقی را نمیشنوند هیچ کلام حقی را بر زبان نمیآورند و هیچ حقی را نمی بینند با این وجود اینان توانایی بازگشت از گمراهی به راه حق را ندارند یا حکایت آنها مثل است که در شبیه بارانی و تاریخ و پر رعد و بر از خوف صدای روبانگیز سائقه های مرگبار انگشتان خود را در گوش ها فرو بردند امید که مفری بیابند. حالانکه خدا بر همه ناسپاسان چیره و مسلط است تو برق آسمان میخواهد دیدههایشان را کور کند هرگاه رعد و برقی برمیجهد جهد به سوی می و چون از غرلش میافتد، حیران و ماتم زده می و خطر را با تمام وجود حس می کند. و اگر خدا میخواست خواست کر و کورشان می کرد. و خدا بر هر کاری تواناست ای مردم پروردگارتان را بنده باشید آن خدایی که هم شما و هم انسانهای قبل از شما را بیافرید و نعمت زندگی داد و با این پرستش شاید به حرمت خداوند را نگاه دارید آن خدایی که زمین را چون فرشی به زیر پاهای شما گستران و آسمان را بالای سرتان برافراشت و از آن بارانی فرستاد و به باسطه آن انواع میوه ها را رویاند تا روزی شما گردند و شما خود نیک می که نباید هیچ چیزی را همسطح و همتاقی خداوند بزرگ قرار دهید و اگر به این قرآن که بر بنده خودمان نازل کرده این شک و تردید دارید اگر راست می یک سوره مثل آن بیاورید گواهان هم از خودتان باشند نه از جانب خدا و اگر نتوانستید که هرگز نمیتوانید ادعایتان را به اثبات برسانید پس بهترین راه این است از آتشی که هیزمان از مردم و از سنگست بپرهیزید این چون این آتشی خاص ناسپاسان است به آن کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان سراسر خدمت و نیکی است، مژده‌رسان بهشت هایی که نرها در آن جاری برای آنهاست. آنچنان که هرگاه از از میوههایش بهره‌مند شوند، گوگند، این مانند برکاتی است که قبلا نصیب ما شده بود و اینچنین از نعمتهای مورد انتظارشان در حد کمال به آنها عطا می‌شود. و همچنین در بهشت دارای همسرانی پاکیزه و اصیل هستند و جاودانه همه بهرهمندند خداوند هیچ عبایی ندارد برای بیان حقیقت از پشه و حتی کمتر از آن مثال بیاورد چه اهل باور و معرفت خوب میدانند در این مثل حتما بیان نکته حقی است از جانب پروردگارشان آمده است اما ناسفاسان بی ایمان میگویند این چگونه مثلی است و خداوند قصد بیان چه نکتهی را دارد که بسیاری را بدان گمراه می کند و بسیاری را هدایت بدانید مسئلهای خداوند گمراه نی مگر مردم بدکردار زشت سیرت را آنان که عهد و پیمان الهی را پس از تعییدش می شکنند و پیوندهایی را که خداوند امر به رعایت آن کرده قطع می کنند و در زمین تباهی و زشتی ترویج می کنند. آنان حقیقتا زیان دیدگانند کیفتک فرون بیالله و کنتم امواتا فأحیا ثم يمیتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون آخر چگونه خدا را باور ندارید در حالی که شما مرده بودید و او شما را زندگی داد هموست که دوباره جانتم را میگیرد و باز به شما حیات میبخشد سرانجام نیز همه به سوی او باز خواهید گشت او همان خدای مهربانیست که هران چرا در زمین است برای بهرهمندی شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و به زیبایی تمام هفت آسمان را برافراشت و او بر هر چیزی آگاه. و یادار هنگامی که پروردگارد به فرشتگان گفت میخواهم بر روی زمین جانشینی بیافرینم آنها گفتند ای خداوند بزرگ آیا میخواهی موجودی ای را جانشین کنی تا زمین را به فساد و تباهی کشد و به ناحق خون بریزد حالان که ما خودمان تو را به حکم ستایش تصویح میگوییم و هر لحظه تقدیست میکنیم و خداوند دانا گفت من چیزها می دانم که شما از آن بیخبرید. و خدا همه اصما کلیدهای فهم هستی را به آدم تعلیم داد. آنگاه به فرشتگان عرض داشت و گفت اگر شما راست می و هنوز بر ادعای قبلیتان هستید نام های این حقایق را برایم بیان کنید. فرشتگان گفتند ای خداوند پاک و ما به لیل از آنچه خود به ما آموختهی آگاهی دیگری نداریم این تویی که دانای حکیمی آنگاه خداوند گفت ای آدم از این نامهایشان آگاهشان کن و چون آدم از همه نامها آگاهشان کرد خداوند به فرشتگان گفت نگفتم که نادیده‌ها های آسمان و زمین را می دانن. و آقا هم از آنچه آشکار می‌دارید و آنچه پنهان می‌کنید. و هنگامی که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید بیدرنگ همه سجده کردند مگر ابلیس که متکبرانه از فرمان خداوند سر باز زد و با این تمرد از گروه ناسپاسان شد آنگاه گفتیم ای آدم با همسرت در بهشت ساکن شو و از هر نعمتی که خواستید در کمال امنیت بهرمند شوید فقط به این درخت نزدیک نشوید و چونانچه وسوسه شدید و فرمان شکستید بدون شک به خویشتن ستم كردهاید و از ستمكاران خواهید بود اما شیطان با وسوسه آنها را به سقوط کشانید و آنان را از آنچه در آن که دران بودند بیرون کرد بیدرنگ گفتیم همه از این مرحله متعالی پایین روید که لیاقتش را نداشتیم از این پس دشمنان یک دیگرید. بروید بر زمین تا زمانی که تکلیفتان روشن شد سرانجام آدم رانده شده پشیمان از پربعدگارش کلماتی را آموخت که باعث پذیرش توبه او گردید زیرا خداوند بزرگ بسیار با گذشت و توبه پذیر است گفتیم همه شما به مرحله پایینتری روید و همانجا بمانید تا راهنمایی برایتان بفرستم این یک فرصت جدید است هر کس از راهنمایی من پیروی کند هر گونه استراب و اندوه و یعسی از او دور خواهد شد و کسانی که اناد و ناسپاسی پیشه کنند و آیات و راهنمایی های ما را دروغ بپندارند بدون شک اهل آتشی خواهند بود که در آن جافدانه میمانند ای بنی اسرائیل به یاد آورید آن نعمتی را که عطایتان کردم پس وفا کنید به عهدی که با من بستید بیشک من نیز به عهد شما وفادار خواهند بود و تنها از من بترسید پس حرمت این قرآنی که تورات شما را تعیید میکند نگاه دارید و به آن ایمان بیاورید و خود را به اولین منکر این کتاب تبدیل مکنید و آیات مرا را سوداگرانه به بهای اندک نفروشید و از من پروا داشته باشید به هیچگاه قامت حق را با ردای زشت باطل نیامیزید تا پنهانش کنید در حالی که به حقانیت حق آن واقفید نماز را به پادارید و زکات انبالتان را پرداخت کنید و با رکوع کنندگان حق پرست همراه شوید. آخر این چگونه است که شما دیگران را به خوبی و نیکوکاری امر میکنید اما خودتان را فراموش میکنید در حالی که آیات ما همواره لغلقهٔ زبانتان است چرا عقل خود را کار نمیاندازید واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبیرة الا در سختیها و مساعب روزگار از صبر و نماز نیرو بگیرید. هرچند چند که میدانم بر همه سخت و گران است، مگر بر فروتنان. همان هایی که بیگمان میدانند روزی پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد. و بدون شک نزد او باز خواهند گشت ای بنی اسرائیل بیا دارید آن نعمتی را که عطایتان کردم و شما را بر همه جهانیان برتری دادم به ترسید از روزی که کسی به درد کسی نخواهد خورد و هیچ پادرمیانی و شفاعتی در کار نیست و از هیچ کس قرامت گرفته نمی شود و به کسی یاری نمی رسد. و یادارید آن زمانی که شما را از دست فرعونیان نجات دادند، یادتان هست؟ شما را سخت شکنجه می کردند پسرانتان را سر می بریدند و دخترانتان را زنده نگاه می داشتند. و این یک آزمایش بزرگ و حساس الهی بود و بیادارید آنگاه که دریا را برایتان شکافتیم. و از دست دشمن نجاتتان دادیم فرعونیان را غرق کردید و شما تمام این صحنه ها را می دیدید. به یاد دارید آن زمان که با موسی وعده کرده بودیم چهل شب نزد ما بماند اما شما در غیاب او گوساله را برای پرستش برگزیدید و این ستمی بود که بر خود روا داشتید اما باز مهربانانه از شما گذشتیم و فرصتی دادیم تا شاید به راه شکر سپاس بیایید و باز یاد دارید آن زمانی که هم کتاب و هم قدرت تشخیص حق از باطل را به موسی عطا کردیم تا باعث راهنمایی و آرامش شما باشد و انگامی که موسی به قومش گفت شما با این حرکت زشت و زننده گوساله پرستی به خودتان ظلم کردید پس توبه کنید و به سوی خالق خود بازگردید و نفستان را بکشید که این کار نزد خدا از یک زندگی آلوده به مراتب بهتر و آبرومندتر است اما باز خداوند توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. حقا که او توبه پذیر و بسیار باگذشت است این ماجرا سپری شد و باز شما گفتید ای موسا تا خدا را آشکارا نشان ما ندهی هرگز به تو ایمان نمی آوریم ناگهان سائبه مرگ بار بیامد و شما را در حالی که نگاه می کردید به کام خود فرو برد پس از این مرگ باز شما را زنده کردیم تا شاید حرمت نگاه دارید و سپاس گذار شدید دوباره مهربانانه ابرها را چون سایبانی بر سرتان قرار دادیم و از من و سلوه تقدیمتان کردیم با کی نیست از روزی پاک و بیالای شما بخورید و بهرمند شوید. بدانید آنها به ما ظلم نکردند بلکه بر ستم روا داشتند و یادارید هنگامی که گفتیم به این شهر وارد شوید. و از نعمتهایش در هر جا و هر زمان بهرهمند گردید مشروط بر آنکه از دروازه شهر سجده‌کنان داخل شوید و با زبان اخلاص بگویید خداوندا بار سنگین گناه و ناسپاسی را از دوش ما بردار تا ما نیز از نافرمانی های شما بگذاریم و بر نعمت و پاداش نیکوکاران بیافزاییم. اما ستمکاران سخن را به لیل از آن به آنها گفته شده بود بیان کردند و به کیفر این اسیان و ناسپاسی عذاب سختی از آسمان بر آنها فرود آوردیم و باز به یاداریم آن زمانی که موسا دست و عصا برداشت و برای قوم خود آب خواست به او گفتیم اصای خود را با آن سنگ بزن تا دوازده چشمه جوشان نمایان شود تا هر گروهی به سوی آبشقر خود رود از رزق الله بخورید و بنوشید ولی در روی زمین تباهی و نکبت به راه میندازید و آن هنگام که شکم پرستانه گفتید ای موسا مزاج ما با یک نوع غذا سازگار نیست از خدای خود بخوا تا از روی های زمین از سبزی و خیار و سیر گرفته تا عدس و پیاز برای آن بیاورد و موسی گفت آخر چگونه می توانید یک چیز برتر را با چیزی فروتر عوض کنید اگر غذا و تاام می خواهید بروید به دیاری فرود است که هرچه خواستید بیابید. و این چنین شد که ذلت و فقر و بیچارگی توان با خشم خدا آنها را محاصره کرد و این نتیجه کفران و ناسپاسی آنها نسبت به آیات خداست زیرا آنها پیامبران خدا را به ناحق می و سرمستانه اسیان می کردند و قومی تجاوزکار بودند این صابروا والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل فلهم عند ربهم ولا خوف ولا هم و مسیحی و سابعی هستند چونانچه به خداوند بزرگ و روز حسابرسی در آخرت ایمان داشته باشند و دارای عمل کردی نیک و مفید باشند پاداش آنها بر اهده خداوند است. و باید که هیچ ترس و یأس و اندوهی به خود راه ندهند و بیاد آورید آن زمان که پیمان محکمی از شما گرفتی کوه تور را بالای سرتان نگاه داشتیم و گفتیم توراتی را که به شما داده این با قوت بگیرید و مراقبت کنید و آن چرا که آن بیان شده به خاطر بسپارید تا بلکه حرمت نگاه دارید و محفوظ بمانید ولی پس از مدتی عهد را شکستید و از فرمان ما سرپیچی کردید و اگر بیکران دریای فضل و رحمت خداوند شما را دربر نمی گرفت بدون شک از زیانکاران به حساب می آمدید. و شما خوب میشناسید کسانی را که در روز شنبه از حکم و فرمان ما سرپیچی کردند و ما به آنها گفتیم به بوزینگانی زلیل و خاموش تبدیل شوید و ما این کار را کردیم تا عبرتی باشند برای معاصران و آیندگان و موعزهی برای هر که از خداوند مقتدر می حراسد که موسا به قوم خود گفت خداوند بزرگ به شما فرمان داده است تا گاوی را قربانی کنید گفتند ما را مسخره کرده ایم موسا جواب داد به خدا پناه میبرم، اگر مثل نادانان رفتار کرده باشم گفتند از پروردگارت بخواب تا برای من شردد چگونه گاوی باید قربانی کنی گفت خداوند میفرماید گاوی که نچندان پیر و فرتوت است و نچندان کمسن و بیبنیه یک گاو میان سال اکنون به دستور خدا عمل کنی گفتند به پروردگارت بگو برای من شردد گاو چرنگی باشد گفت خداوند می‌فرماید یک گاو زرد طلایی که چشم هر کس بر او بیفتد شادمان شود گفتند از پروردگارت بخواه تا شرح بیشتری بگوید چه هنوز در مورد گاو قربانی به شناخت قطعی نرسیده ای و اگر خدا بخواهد به این کار هدایت خواهیم شد موسا گفت خداوند می‌فرماید از آن گاوه ها نیست که رام و تسلیم زمین را شخم بزند و کشت و آبیاری کند گاوی است یک رنگ و بی ای گفتند اکنون شناختمان را کامل کردی سپس رفتند و قربانی کردند در حالی که نزدیک بود از این فرمان هم سرپیچی کنند و به یاد آورید آن زمان را که کسی را کشتید و آنگاه به یک دیگر بهتان زدید تا خونش پایمال شود اما خداوند دانا را که پنهان کرده بودید آشکار کرد و باز از این فتنه نجاتتان دادیم و گفتیم قطعی از آن گاو قربانی را به مقتول بزنید که خداوند چنین مرده ها را زنده می کند و اینچنین نشان های قدرت و توانایی خود را در برابر دیدگان شما به نمایش می‌گذارد تا شاید عقلتان به کار افتد اما پس از این ماجرا قلبهای شما سخت و سنگین شد همچون سنگ یا سخت تر از سنگ چه گاهی از سنگی جویها روان گردد و پاری از آنها چون شکاف بردارد از آن آب بیرون جهد و گاه سنگی از خوف خداوند از فراز کوه به زیر افتد بدانید که خداوند هرگز از عمل کرد شما قافل نیست آیا باز طمع می دارید تا شما را باور کند در حالی که ادهی از آنها کلام خدا را میشنوند و با آنکه خوب میفهمند تحریفش می کنند و این کار را آگاهانه انجام می دند. و هنگامی که اهل ایمان را ملاقات کنند میگویند ما نیز ایمان آوردی ایم. و زمانی که با یکدیگر خلوت می کنند معترضان میگویند چرا با اهل ایمان از نعمت و قدرت خدادادیتان میگویید تا آنها هم در پیشگاه خداوند از این نکات علیه خودتان استفاده کنند؟ چرا عقلتان را به کار نمیاندازید؟ آیا نمیدانند که خداوند بزرگ بر آنچه که پنهان می کنند و آنچه که آشکار می سازند آگاهانه اشراف دارد؟ و برخی از آنها بی سوادانی هستند که جز آرزوهای ذهنیشان، از کتاب خدا چیز دیگری نمی دانند. اینان تنها به گمان و خیال خیش تکیه دارند بدا به حال کسانی که کتاب را با دستان خود می نویسند و ادعا می کنند که این کتاب از جانب خداست تا آن را به عنوان کتاب خدا به سخیفترین و کم ارزشترین قیمت دنیایی بفروشند پس بر آنها به خاطر آنچه نوشتن و واقع بر تجارتی که کردند با خیال خام میگویند چند روزی بیشتر در آتش نمیمانیم، ای پیامبر به آنها بگو آیا از خداوند چنین عهدی گرفته اید؟ اگر چنین است خدا هرگز از عهدش تخلف نمیکند. کند اما چنین نیست بلکه شما چیزی را که نمیدانید به خداوند نسبت می دهید. آری کسانی که دستاوردشان زشتی و پلیدی است و جرم و گناه آنها را بی امن محاصره کرده است اهل آتشند و در درانند. و الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اصحاب كَ اصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خالدون. و آنان که حقایق را با تمام وجود باور کردند و عملکردی خوب و شایسته دارند بی تردید آنان اهل بهشتند و دانه لذت میبرند و و بیاد آورید هنگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند بزرگ را پرستش نکنید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و درماندگان نیکی روا دارید و هرگاه با مردم سخن میگویید بهترین کلام را برگزینید و نماز به پادارید و زکات را پرداخت کنید اما جز اندکی همگی از فرمان خدا سرپیچی کردید و مغرورانه رویگردان شدید و یاد دارید آن هنگام را که از شما پیمان گرفتیم که خون یک دیگر را نریزید و همدیگر را از خانه و دیار خیش آواره نکنید و شما به چنین پیمانی اعتراف کردید و خود گواهید اما اكنون؟ این شمایید که همدیگر را میکشید و ادهی را از خانه و کاشانشان آواره می کنید و بر علیه آنها تجاوز کارانه و به ناحق متحد میشوید و هرگاه به اسارت شما در آیند برای آزادیشان فدیه طلب می کنید حالان که از اساس بیرون کردنشان از سرزمینشان بر شما حرام بود آیا فقط می به بعضی از آیات کتاب خدا عمل کنید و برخی دیگر را انکار کنید. بدانید جزای کسی که اینچنین عمل کند چیزی جز خاری و زلت در دنیا نیست و به خاطر دستاوردشان در روز بیامد به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بدانید خداوند بزرگ از عمل کردتان قافل نیست. اینان همان کسانی هستند که زندگی دنیا را به بهای از دست دادن آخرت خریدند و به خاطر این تجارت زیانبار هیچ افوی شامل حالشان نمی شود و کسی توانایی نجاتشان را از عذاب ندارد ما به موسی تورات را عطا کردیم و پیامبرانی بعد از او فرستادیم به عیسی. پسر مریم نیز دلایل آشکاری دادیم و او را به واسطه روح القدس تعیید نمودیم. اما هرگاه که پیامبری آمد و چیزهایی گفت که با هواهای نفسانی شما سازگار نبود متکبرانه سرکشی کردید. سپس ادهی را انکار کردید و ادهی را کشتید. و آنها گفتند که قلوب ما گواه مدکه ما در هجاب است. پس نفرین خدا بر آنها به خاطر ناسپاسی و, و چه اندک است ایمانشان. با آن زمان که قرآن خداوند به سوی آنها فرستاده شد با آنکه آن, ان را شناختند و کتاب آنها را هم تایید کرد و نیز با آنکه خود آنها خواستدار نیرویی بودند تا بر کافران شوند اما باز به پیام بر به کتابش ایمان نیاوردند پس نفرین خداوند بر همه ناسپاسان باد چه معامله بدی با خود کردند آنگاه که از شدت حسد قرآنی را که خداوند نازل کرده بود قبول نکردند زیرا نمی توانستند شاهد این باشند که خداوند فضل و را و هر کدام از بندگانش که به قاعد و به انسان خشمی مضاعف آنها را فرا گرفت بدانید برای ناسپاسان حسود عذابی خار کننده است. و انگامی که به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل کرده ایمان آوری گویند ما فقط به آنچه بر خودمان نازل شده است ایمان می‌آوریم. و غیر کتاب خودشان را مردود میدارند در حالی که این قرآن، کتب آسمانیشان را تأیید می کند ای پیامبر به آنها بگو اگر چنان چه ادعا می کنید که فقط به کتاب خودتان ایمان دارید پس چرا پیامبران خدا را به ناحق می کشتید همانا موسی برای هدایت شما با دلایلی روشن به سویتان آمد اما شما گوساله پرستی کردید و راه ظلم و ستم در پیش گرفتید و یاد دارید آن هنگام که از شما پیمان سنگینی گرفتیم و کوه تور را بالای سرتان برافراشتیم و گفتیم آنچرا نازل شده است با دل و جان بگیرید و مراقب باشید و بشنوید کلامش را گفتند شنیدیم و عمل نکنیم و به خاطر ناسپاسی و دقیانشان وضع وسیغه گومسال پرستید عبدالحاجشان جا گرفت ای پیام بر به آنها بگو اگر واقعا به آنچه میگویید باور دارید باورهایتان شما را به بدکاری و بدفرجامی میرساند به آنها بگو اگر راست میگویید که بهشت خدا و حیات جاودان فقط ویژه شماست نه مردم دیگر پس آرزوی مرگ کنید تا زودتر به وصال خیش برسید و هرگز آرزوی مرگ نمی زیرا دستاوردشان زشت و پلید است و خدا ستمکاران را خوب می‌شناسد. وقتی شخصیت آنها را تحلیل کنی خواهی دید که آنها هریسترین مردم به زندگی دنیا هستند حتی هریستر از مشرکان برخی از این ناسپاسان خودخواه حتی طالب عمر هزار ساله هند. اما حتی این عمر دراز آنها را از عذاب الهی مسون نخواهد کرد و خداوند نسبت به عمل کردشان بیناست. به هر کس که نسبت به فرشته مقرب ما جبرائیل دشمنی ورزد بگو که جبرائیل به فرمان خداوند این آیات را بر قلبتو نازل کرده است آیاتی که تمام کتب آسمانی را تأیید می کند و سراسر هدایت و آرامش و بشارت هست برای اهل ایمان هر ناسپاسی که دشمن خدا و فرشتگانش و پیامبران و جبرائیل و میکائیل باشد خداوند نیز دشمن این کافران خواهد بود حقیقتا ما بر تو آیات و نشانه روشنی نازل کردیم و کسی منکر آن نخواهد شد مگر بدکاران زشت سیرت. آیا چونین نیست؟ هر بار با ما عهد بسند تعدادی از آنها پیمان چکنی کردند آری، اکثر آنها ایمان نمیآورند. ورگا رسولی از جانب خداوند به سوی آنها می آمد با آنکه راست بودن کتابشان را تأیید می‌کرد، جماعتی از اهل کتاب چنان رفتار میکردند کردند که گویی از کتاب جدید خدا بیخبرند و آن را پشت سر می انداخدند. و در زمان حکومت سلیمان آنها تسلیم وسوسه هایی بودند که شیطان صفتان همواره در گوششان زمزمه می کردند سلیمان ناسفاس نبود بلکه ناسپاسی و کفران براغزنده شیطان صفتانی بود که به مردم جادوگری می آموقدند. و به خاطر آگاهی که آن دو فرشته موجود در بابل یعنی هاروت و ماروت از سهر و افسونگری داشتند مردم به طمع آموقدن سهر به سوی آنها رهسپار سپار می شدند و آنان به هر کسی که آموزش می دادند می کار ما آزمون سخت و سنگین است مراقب باشید به دامن کفر و ناسپاسی نیفتید و آنها آموختند که چگونه با جادوگری بین مرد و همسرش جدایی بیندازند اما قافل از این که خداوند نمی به کسی زیان برسانند مگر که خود خدا اراده کرده باشد و آنها در حقیقت چیزی را آموختند که نه تنها نفعی برایشان ندارد بلکه زیان و نکمت آن متوجه خود آنهاست و خود آنها نیک می آنکه آن چنین کالای زشتی خریده است هیچ بهره ای از حیات جافدانی نخواهد داشت و اگر آگاهی از حقیقت داشتند میفهمیدند فهمیدند که خود را به بد چیزی فروختند اما اگر به جای افسون و جادوگری به خداوند قادر آگاه ایمان می آوردند و حرمت فرمانهای خدا را نگاه می داشتند، برایشان از هر چیز دیگری بابرکت تر بود اگر می دانستند. ای اهل ایمان هیچگاه در خطاب به پیامبر از عبارت رائنا استفاده مکنید بلکه بگویید انظرنا ما را بینگر و بر ما ناظر باش از این کلام پند بگیرید زیرا ناسپاسان در عذابی درد ناکند بدانید که نه ناسپاسان اهل کتاب و نه حتی مشرکان هیچ کدام دوست ندارند تا خیر و برکتی از سوی خداوند بر شما نازل شود در حالی که خداوند بزرگ هر صلاح را بداند شامل رحمت خاص خود می کند. بدانید فضل و کرم خداوند بسیار بزرگ است. ما هیچگاه آیه ای را کنار نمی گذاریم و از یاد نمی بریم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را بیاوریم آیا نمیدانی که خداوند بر هر کاری تواناست؟ آیا نمیدانی که فرمان مطلق آسمان ها و زمین با خداست و شما را هیچ یار و یاور و پناهگاهی به جز خدا نیست؟ آیا میخواهید همان برخوردی را با رسول اسلام کنید که پیش از این با موسا کردند؟ بدانید که هرکس ایمان به حقیقت را رها کند و راه ناسفاسی و کفران پیشه کند بیشک راه درست را گم کرده است بسیاری از اهل کتاب با آنکه حق بر آنها آشکار شده از روی حسد دوست دارند حال که ایمان آورده اید دوباره شما را به وادی کفر و ناسپاسی بازگرداند اما شما عفت کنید و با گذشت با آنها برخورد کنید تا خداوند به موقع فرمان خیش را جاری کند و خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست نماز را به پای دارید و زکات اموالتان را پرداخت کنید و بدانید تمامی دستاورد نیکتان را نزد خداوند خواهید یافت و خداوند به عمل کاملا بیناست و ادعا کردند که هیچ کس به بهشت خداوند وارد نمی شود مگر آنکه یهودی یا مسیحی باشد این آرزوی آنهاست به آنها بگو اگر راست میگوید، دلایلش را بیاورید بلا من اسلم وجهه لله و محسن فله اجرهو عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون آره هرکس که سراپا تسلیم خداوند شبد و رو او آورد در حالی که عمل کردش نیست سراسر خوبی و خدمت باشد بدون شک پاداشش نزد خداوند محفوظ است و هیچ ترس و یأس و اندوهی در او راه ندارد و یهودیان میگویند مسیحیان برحق نیستند و مسیحیان میگویند یهودیان برحق نیستند نیستند که آنها کتاب خدا را میخوانند و آگاهند حتی در این میان آنهایی که سوادی ندارند چیزی شبیه حرف آنها را تکرار میکنند بدون شک خداوند بزرگ در روز قیامت در مورد آنچه چه اختلاف میکنند قضاوت خواهد کرد و کیست ظالمتر از آنکه بر مساجد خدا سلطه یافت تا نگذارد نام خدا در آن یاد شود و در نابودی آنها کوشید پس ورود آنها به مساجد خدا جایز نیست مگر آنكه ناک و ترسان وارد شود بیشک برای آنان در دنیا خاری و ذلت است و در آخرت عذابی بزرگ ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علیم مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر طرف رو کنید رو سوی خدا کردین خداوند همه جا حضور دارد و بسیار آگاه است. و ادهی گفتند خداوند فرزندی اختیار کرده است. دور باد ناپاکی و نقص از او زیرا آنچه که در زمین و آسمان هاست از آن اوست و همه ریزخار نعمت اویند و فرمانبردار به وجود آورنده بی همتاق زمین و آسمان هاست و هنگامی که اراده بر کاری کند فقط میگوید باش و بیدرن خواهد بود صبح القدس. صبح القدس. و بی سوادان ناآگاه میگویند چرا خداوند با ما سخن نمیگوید و چرا معجزه بر ما نمایان نمی شود این همان سخنی است که پیشینیانشان نیز میگفتند گفتند قلب ها قوای مدرکه آنها شبیه هم است در حالی که ما برای اهل یقین و باور چنان آیات و نشان روشنی خرط کردیم که جای هیچ شک نمی ماند ما تو را به حق به پیامبری مبعوث کردیم تو هم بشارت دهنده باشی و هم بیم دهنده و تو هرگز مسئول دوزخیان زخیان نیستی ای پیغمبر هرگز یهودیان و مسیحیان از تو راضی نمی‌شوند مگر آنکه از افکار آنها تبعیت کنی تو با آنها بگو که فقط راهنمایی خدا هدایت خالص است و اگر چنانچه به خاصه آنها تندادی و پیرویشان کردی آن هم بعد از آنکه آگاه شدی بدون شک هیچ یا یاوری از سوی خدا نخواهی داشت آنهایی که کتاب الهی تقدیمشان کردیم و به خوبی آن را می و حقش را چه در کلام و چه در عمل به جا می آورند بیشک همانها به کتاب ایمان دارند و اما آنان که بدان کافر و بدبینند همگی زیانکارند ای بنی اسرائیل، بیا دارید نعمتی را که عطایتان کردم و شما را بر همه جهانیان برتری دادم و بترسید از روزی که کسی به جای دیگری مجازات نمی شود و هیچ بدلی به جای مجازات قابل قبول نیست و شفاعت و پادرمیانی کسی سودی نبخشد و یار و یاوری در کار نبخشد و انگامی که خداوند ابراهیم را توسط کلماتی امتحان کرد و او سربلند از این امتحان بیرون آمد گفت من تو را به پیشوایی مردم برگزیدم و ابراهیم گفت این پیشوایی را به فرزندان من هم عطا می کنی؟ و خدا گفت چنان که ظالم و ستمکار باشند چنین امتیازی با آنها نخواهد رسید و ما کعبه را محل امن و مرجع و ملجع مردم قرار دادیم پس مقام ابراهیم را جایگاهی برای پرستش خداوند بزرگ قرار دهید چه از ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفتیم تا خانه را برای تواف کنندگان و اعتقاف کنندگان و نمازگزاران پاک و آماده کنند و انگامی که ابراهیم دست به دعا برداشت که پروردگارا این شهر را محل امن و آرامش قرار بده و رزق و روزی اهلش را که خداوند و روز حسابرسی را باور دارند فراوان گردان و خدا گفت حتی کسی که کفر ورزد در دنیا اندکی بهره مندش اما در روز حسابرسی به خاطر ناصبوسیاش او را به عذاب آتش گرفتار کنم که سرنوشت بسیار بدی است هنگامی که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای کعبه را برافراشتند دست به دعا برداشتند که پروردگارا این عمل را از ما قبول کن زیرا این تویی که بر همه چیز و آگاهی پروردگارا ما را تسلیم خودت گردان فرزندان ما را نیز مقام تسلیم عطا کن و راه بندگی مخلصانه را نشان مانده و از خطاهای ما در زیرا تو تو بپذی و بسیار باگذشتی پروردگارا از بین خودشان پیامبری را برایشان برگزین تا آیات تو را بر آنها بخواند و علم کتاب و حکمت بیاموزد و آنها را از هرچه زشتی و پلیدی پاک گرداند زیرا تو مقتدر و حکیمی ربنا و هیچ کس از آین ابراهیم روی نگرداند مگر انسانهای پست و بیخرد زیرا این ما بودیم که ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و شاخص کردیم و بیشک همو در آخرت از شایستگان است قال له قال اسلمت لرب العالمی. و انگامی که خداوند بزرگ به او گفت تسلیم شو تسلیم هر آنچه ما مقدر کرده و ابراهیم بیدرنگ گفت سراپا تسلیم پروردگار جهانیان شدن و ابراهیم و یعقو همین فرهنگ تسلیم خدا بودن را به فرزندانشان وسیعت کردند و گفتند ای فرزندان خداوند بزرگ آین تسلیم را برای شما انتخاب کرده است پس چه در زندگی و چه در مرگ تسلیم امر خدا باشید و جز به آیین تسلیم نمیرید آیا شما شاهد آن صحنه بودید هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید و او بیدرنگ رو به فرزندانش کرد و گفت بعد از من شما خود را در اختیاری که قرار میدهید و کرا میپرستید گفتند مطمئن باش که خدای تو خدای نیاکان تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را میپرستی همان خدایی که یکتاست و بدان که ما همه تسلیم او هستیم. آری، آنها جماعتی بودند که اکنون درگذشتند. گذشتند. مال خودشان و دستاورد شما نیز متعلق به خودتان و شما مسئول آنچه که انجام دادند نیستید. ادعا کردند، اگر یهودی یا مسیحی شوید حتما به راه درست و نجات بخش هدایت می گردید ای پیامبر دانها بگو ما آین یک ابراهیم را در سینه داریم و اهل شرک به خدا نیستیم چون که ابراهیم نیز اهل شرک نبود بدون شک بگویید ما به خداوند بزرگ ایمان آورده ایم و آنچرا که بر ما و آنچرا که بر موسی و عیسی و همه انبیا نازل کرده است باور کرده ای و بین هیچ کدام از انبیا فرقی نمیگذاری زیرا سراسر وجود ما تسلیم امر خداوند است و اگر باورهای به حق شما را بپذیرند بدون شک به راه نیک هدایت شدند و اگر روی بگردانند لجاجت کردند و خداوند بزرگ را در برابر همه آنها و در همه سختی ها کفایت میکند زیرا او بسیار شناوا و آگاه است سیغه ومن احسن من الله و ونحن له عابدون این است رنگ زیبای خدا و خداشناسی و چه کسی خوشرنگ تر از خداوند زیباست؟ بدانید ما فقط او را بنده ایم بگو آیا در مورد الله با ما مجادله میکنید در حالی که او پروردگار ما و شماست پس دستاوردهای ما برای خودمان و دستاورد شما نیز برای خودتان بدانید که ما آزاد کنندگان از برای اوییم آیا میگویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فنزندانش یهودی یا مسیحی بودند؟ ای پیام با به آنها بگو شما به این مطلب آگاه یا خداوند بزرگ و واقعا ستمکار از کسی که گواهی خود را از خدا پنهان می کند تصور می شود. بدانید خداوند بزرگ نسبت به عمل قافل نیست آری آنها جماعتی بودند که اکنون درگذشتند. دست مال خودشان و دست شما نیز متعلق به خودتان و شما مسئول آنچه که آنها انجام دادند نیستید <موسیقی> <موسیقی> کمخرردانی از میان مردم میگویند چه چیز باعث شد که مسلمانان از قبله که رو سوی داشتند برگشتند. ای پیامبر به آنها بگو که مشرب و مغرب از آن خداست و خداوند بزرگ هر که را بخواهد به مسیر درست راهنمایی میکند. این چنین بود که ما شما را یک امت متعادل قرار دادیم تا برای همه مردمان گواه و الگو باشید، همچنان که رسول اسلام برای شما گواه و الگوست. به بل را که روز سویان میاشتید تغییر ندادیم مگر آنکه شما را امتحان کنیم تا مشخص کنیم چه کسی از پیام بر طبیت می کند و چه کسی مخالفت میبرزد و این امتحان بزرگ بر سخت آمد مگر برامان که مزه هدایت الهی را چشیده بودند بدانید خداوند ایمان شما را بیپداش نمیگذارد زیرا، خداوند بزرگ بر همه مردم بسیار مهربان و باگذشت است یا رحمن و یا وقتی روی خود را به سمتهای مختلف آسمان میگردانی چهرت را می‌بینی، میدانیم چه می تو را به سمت قبلی که دوست میداری و آرزویش را می‌کنی می‌گردانی، پس هم اکنون رویت را سوی مسجد الحرام کن پس هر کجا که بودید روی سویان کنید و اهل کتاب نیز خوب میدانند که این تغییر قبله آیه است که از جانب پروردگارشان آمده است و خداوند بزرگ نسبت به عمل غافل نیست برای اهل کتاب هر دلیل و برهانی که بیاوری روی سوی قبله تو نخواهند کرد تو نیز به سوی قبله آنان روی نمی کنی حتی آنها مابین خودشان نیز قبله یک دیگر را قبول ندارند و اگر چنانچه بعد از این که به تو آگاهی دادیم از خواهش های نفسانی آنها تبعیت کنی بدون شک از ستمکاران خواهی بود کسان که کتاب عطایشان کردیم آن را چون فرزندانشان میشناسند با این وجود گروهی از آنها آگاهانه حق را کتمان می کند شک مکن که حق فقط همان است که از جانب پروردگارت میآید. هر کس را راهی است که بدان سوی می روید. اما شما کوشش کنید تا در خیر و خدمت از یک دیگر پیشی بگیرید و مطمئن باشید در هر جا که باشید خداوند شما را دوباره جمع خواهد کرد زیرا خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست و از هر مکان که بیرون آمدی روی سوی مسجد الحرام کن و بدان که حق همان است که پروردگارت حق می کند و خداوند از عمل کردتان غافل نیست و از هر مکان که بیرون آمدی روی سوی مسجد الحرام کن بلکه همه شما هر جا که بودید روی سوی آن کنید و چنان متحد و یک پارچه باشید تا کسی ایرادی بر شما وارد نکند مگر آنکه ستمکار و چین توز باشد و از آنها نترسید و از من بترسید که خداوند ده شما هستم و به نیستان نعمتم را بر شما کامل می کنم تا شاید به راه نجات و آرامش رهنمون شوید ما پیامبری از خودتان را به سویتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و پاک و متعالیتان گرداند و شما را علم کتاب و حکمت بیاموزد و تعلیم تندهد آنچرا که نمیدانید. ولا تكفرون یادم کنید تا یادتان کنند و شکر گزارم باشید و ناسپاسی مکنید یا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين اي کسانی که حریق را باور دارید از صبر و نماز قدرت گیرید و بدانید خداوند بزرگ همواره با صابران است و کسی را که در راه خدا کشته شده است مرده نخانید زیرا آنها زنده حقیلی و شما شعور درکش را ندارید بدون شک شما را به اندکی از ترس و گرسنگی و نداری و بیماری و همچنین کمی مال و اموال امتحان می کنیم تا اهل صبر از دیگران متمایز شوند و مژده رسان به اهل صبر همان کسانی که چون اندوه و مصیبتی به آنها رسد بیدرنگ گوگند گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم دروغ درود و رحمت بی پایان پروردگارشان بر آنها زیرا بی تردید راه یافتگان حقیقی هم. بدانید که دو کو صفا و مربه در مکه از شاعر الهی هم. پس کسی که به حج می رود و یا عمره می گذارد نیست اگر آن دو را نیست تواف کند زیرا کسی که از روی صدبنیت عمل خیلی را انجام دهد بداند که خداوند قطر شناس و آگاه است و کسانی که آیات روشن و هدایت بخش ما را آن هم بعد از آن که برای مردم در قرآن به وضوح بیان کند این کتمان کنند بیدرنگ نفرین خداوند و نفرین هر حق شناسی بر آنها باد مگر کسانی که توبه کنند و دست به کار نیک زنند و جبران نمایند و آن حقی را که کتمان کرده اند آشکار سازند بی تردید من هم توبه آنها را میپذیرم زیرا که من بسیار توبه پذیر و با گذشتم کسانی که با کفر و ناسپاسی زندگی کردند و با کفر و ناسپاسی مردند نفرین خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها باد و جاودانه در فضای این نفرین میمانند و برای کم شدن عذاب هیچ افوی شامله ها را نمی‌شود و آنها را مولتی در کار نیست و الاهکم الاه واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و خداوند بزرگ شما خدای یکتا و بیهمتاست است هیچ معبودی جز او نیست همو که بخشاینده و با رحمت است بدانید در آفرینش آسمان و زمین و در چرخی شب و روز و در کشتی هایی که سینه آبها را می و مایه برکت مردمند و نیز در بارانی که خدا از آسمان نازل می و زمین مرده و فسرده را زنده می و مایه گسترش جنبندگان در روی زمین می گردد و همچنین در حرکت بادها و ابرهای گرفتار در میان زمین و آسمان نشانه های بارز و روشنی است برای خردمندان و از میان مردم کسانی هستند که همتایانی برای خداوند قائل میشوند و آنها را به اندازه پروردگار دوست میدارند اما آنها که با تمام وجود حقایق را باور دارند خدا را بیش از هر چیز دیگر دوست میدارند و هنگامی که گستاخان ستم پیش عذاب را ببینند درک خواهند کرد که تمامی قدرت در اختیار خداوند است و عقوبت خدا سخت و طاقت فرساست آنگاه که سران و رقم دروشت عذاب را بنگرند از هواداران و فرمانبرداران خود بیزاری میجویند. به این چونین پیوند بین آنها گسسته خواهد شد و آنهایی که عمری هواداری و فرمان برداریشان را کردند میگویند اگر یک بار دیگر فرصت می یافتیم همچنان که آنها در این شرایط از ما بیزاری جستند ما نیز از آنها بیزاری می جستیم و خداوند عمل را را اینچنین مایه حسرتشان قرار میدهد و آنها هیچ راه خروجی از این آتش ندارند ای مردم از هرچی که از حلال و پاکی در روی زمین است بهرهمند شوید. مواظب باشید و پا جای پای شیطان مگذارید که او دشمن واقعی شماست و او شما را به بدی و تباهی میکشاند و باعث میشود به خداوند نسبتی را دهید که نمیدانید و انگامی که به آنها گفته شود از آن که خداوند نازل کرده پیروی کنید گویند ما به همان راهی می‌رویم که پدرانمان رفتند. اگر پدرانشان گمراه بودند و ذره‌ای تعقل نداشتند و هدایت نشده بودند چه؟ مثل کافران، مثل حیوانی است که کسی در گوش او آوازی بخواند و حیوان غیر از بانگی و صدایی نشنود. اینان نسبت به درک واقع کر و لال و کورند و هیچ حقیقتی را در نمی‌یابند. ای کسانی که ایمان آورده اید از تمامی پاکی هایی که روزیتان کرده این بهرمند شوید و اگر خدا را میپرستید شکر او را بجا آورید و خدا بر شما گوشت مردار و خون و گوشت خوچ و هر آنچه را به نیت غیر خداوند زهب گردد حرام کرد اما اگر کسی در شرایط اضطراری ناچار به مصرف شد چنان که با بیمیلی رفتار کند و خوردم را از حد نگذراند، گناهی مرتکب نشده است و خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است و کسانی که آنچرا خداوند در کتابش نازل کرده کتمان می و حق را بیان نمی‌کنند، تا سوداگرانه با اندکی بست خبر ندارند که در شکمهای خود اوتاش هم باشته می میکنند و به سبب این زشتی خداوند در روز قیامت کلامی به آنها حرف نخواهد زد و از ناپاکی رهایشان نخواهد کرد و برای آنها عذابی دردناک است و بدون شک آنها کسانی هستند که عمرشان را دادند و به جای هدایت و آموزش گمراهی و عذاب خریدند آیا دستاوردی دارند تا بر آتش خدا صبر کنند بدانید خداوند کتابش را به حق نازل کرده است و همه آنهایی که در کتاب خدا اختلاف می کنند به دور از بحرند نیکی آن نیست که به هنگام نماز و عبادت صورت خود را به مشرق و مغرب بگردانید بلکه نیکو واقعی کسی است که خداوند و روز حسابرسی و فرشتگان و کتاب و انبیا را با تمام وجود باور داشته باشد و با آنکه مال خود را دوست دارد آن را با تیب خاطر به خیشان و یتیمان و درماندگان و مسافران در راه و زندانیان نیازمند ببخشد و خالصانه برای خدا نماز گذارد و زکات انبالش را پرداخت کند و به پیمانهایی که میبندند وفادار باشند و در سختیها و ناملاگمات ملاکمهات صبوری پیشه کنند حقیقتا اینها که اهل عملند راستگو هستند و حرمت فرمان خدا را نگاه می‌دارند ای کسانی که ایمان آورده ای در مورد کشته شما ریساس مقرر شده است آزاد در مقابل آزاد بنده در مقابل بنده زن در مقابل زن و اگر کسی از جانب برادر خود از قصاص عف شود، باید مسرورانه به دنبال ادای خونبه ها رود و آن را به نیکوترین ترین بپردازد. این نکته در حقیقت عف و بخششی از جانب پروردگار بزرگتان است. و اگر کسی بعد از این تجاوزکارانه برخورد کند، برای او عذابی دردناک است. ای صاحبان اندیشه برای شما در قصاص زندگی است، نه مرد، باشد که از زشتی و تجاوز پروا کنید و بر شما نوشته شده هرگاه زمان مرگ یکی از شما فرارسد در حالی که مالی اندوخته دارد باید در مورد پدر و مادر و خیشان از روی خیر و انصاف وسیعت کند و این شیوه درست کسانی است که حرمت فرمانهای الهی را نگه میدارند، هر که وسیعت را بشنود و تحریف و دگرگونش کند گناه بزرگی را به گردن گرفته است و خداوند بزرگ بسیار شنوا و آگاه است و اگر وسیعت کننده در وسیعتش راه خطا و جفا رفته باشد چنان که کسی به اصلاح کار در میان وارسان اقدام کند گناهی مرتکب نشده است و خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و با گذشت است ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما روزه گرفتن مقرر شد همچنان که بر پیشینیان شما مقرر شده بود امید آنکه پرهیزگاری را در وجودتان تقویت کنید روزه در روزهای معین و معدود است اگر کسی از شما بیمار و یا مسافر بود به همان تعداد که روزه نگرفته در روزهای دیگر روزه بگیرد و آنان که توانایی آن را ندارند بدل از آن به درمندگان تعام دهند و که بر این عمل خیر بیافزاید، به خود نیکی روا داشته است و اگر علم به روزه داشتید میدانستید که روزه گرفتن برای شما خیر و برکت است ماه رمضان که در آن قرآن نازل شده است برای مردم سراسر خدایت و بیان راهنمایی و تمایز حق و باطل است پس هر کس که توفیق رسیدن به این ماه را داشت روزه بگیرد و هر کس که بیمار و یا مسافر بود آن تعداد که نتوانست روزه بگیرد در روزهای دیگر روزه بدارد زیرا خداوند بزرگ میخواهد بر شما آسان بگیرد و سخت گیری نکند تا این ماه را به سلامت و برکت پایان برید و کدای وند بزرگ را از اینکه راه آرامش را به شما هدی کرده است، به بزرگی یاد کنید. شاید که به مقام شاکران نائل شوید. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَتَ الدَّاعِذَ ذَلِكَ فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُمِنُو بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ای پیامبر اگر بندگانم از تو درباره من سوال کنند، بگو من بسیار نزدیکم، ندای کسی که مرا بخواند پاسخ میدم پس آنها نیز باید به ندای من پاسخ دهند و باور کنند مرا امید آن که به راه رشد و تعالی در آگن. هم بستر شدن با همسرانتان در شبهای ماه رمزان بر شما حلال است آنان لباس شما هستند و شما لباس آنان از آن جایی که خداون می که شما در مورد نزدیکی با همسرانتان در شبهای رمضان نافرمانی کرده و به خود ستم می کنید، از حکم حرمت آن گذشت و شما را بخشید اکنون باکی نیست با همسرانتان هم بستر شدید و از آنچه خداوند برایتان حلال نموده بهرهمند شوید و بخورید و بنوشید تا آن زمان که نور صوف در شب تیره نمایان گردد آنگاه روزتان را به شب برسانید و هنگامی که در مساجد کرده کردید با همسرانتان نزدیکی نکنید آنچه که بیان شد حدود الهی است و نزدیکش نشید خداوند آیاتش را برای مردم این چنین بیان می‌کند امید آنکه حرمت فرمان‌های الهی را نگه دارند اموال دیگر را با دروغ و نیرنگ و کلاهبرداری نخورید و به حاکمان رشوه ندهید تا آنها شما را در برابر خوردن ناحق مال دیگران حمایت کنند و شما خوب میدانید که چه می‌گویم ای پیامبر از تو در تو هلال های مختلف ماه میپرسند به آنها بگو برای این است که مردم زمان و گذشت آن را بدانند و موسم حج را دریابند و بدانید شایسته نیست که از درهای پشت خانه ها وارد شوید بلکه خوب آن است حرمت نگاه دارید و از درهای اصلی خانه ها داخل شوید و از خداوند پروا داشته باشید امید آنکه به رستگاری ناقل گردید و اجازه داده شده تا با کسانی که به جنگ با شما برخواستند بجنگید اما تجاوزکار نباشید زیرا خداوند بزرگ تجاوزکاران را دوست ندارد هر جا جنگ طلبان را یافتید بکشید و از هر جا شما را بیرون رندهند برانید زیرا فتنه از قتل بدتر است اما در مسجد الحرام که محل امنه است با آنها جنگ نکنید مگر که آنها به جنگ برخیزند و اگر دست به چونین کاری زدند آنها را بکشید این چونین است جزای کافران اما اگر دست برداشتند خداوند بزرگ بسیار آمر زنده و باگذشت است و با آنها بجنگید تا آنجا که فتنه از بین برود و دین از آن خدا شود و اگر دست برداشتند دیگر هیچ تجاوزی در کار نباشد زیرا تجاوز جز بر ستمگران روانی است. ماه حرام در مقابل ماه حرام بدانید که شکستن حرمت ماه های حرام قصاص دارد پس هر کس به تجاوز بر حریم شما برخیزد و اندازه همان تجاوز با او برخورد نمایید و از خدا بترسید و بدانید که خداوند با خیشتنداران است و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو و تلقوا تلقو بایدیکم الیت تهلکت ان الله يحب و در راه خدا انفاق کنید و با دست خیش خودتان را به ورته هلاکت نیندازید و عمل خیر و نیک انجام دهید زیرا خداوند بزرگ نیک کاران را دوست دارد و عبادت حج و عمره را برای خدا به نحو و احسن به پایان برید و اگر شما را از حج باز داشتند قربانی کنید از آنچه که میسر است ولی سر خود را متراشید مگر آنکه قربانی به مهندش رسیده باشد و اگر کسی از شما مریض بود و یا بیماری خاصی در سر داشت و نتوانست سر بتراشد به عنوان فدیه یا روزه بگیرد یا صدقه دهد و یا قربانی کند پس انگامی که خیالتان راحت شد و ایمن گشتید هر کس که بخواهد از عمره تمتع به حج بازاید آنقدر که برایش میسر است قربانی کند و چون توانایی قربانی کردن نداشت در حج سه روز روزه بگیرد و هفت روز دیگر نیز پس از بازگشت از حج روزه بدارد تا به ده روز تمام روزه گرفته باشد البته این حکم برای کسی است که اهل شهر مکه نباشد حرمت فرمانهای الهی را نگاه دارید و بدانید چنانکه عوامر او را نادیده بگیرید عقوبت خدا سخت و طاقت فرساست حج در ماهای معینی می باشد. پس هر که بخواهد فریزه حج خود را در این ماه به جا آورد باید که نه جمع کند و نه حرکت زشت و زنندهی از او سر زند. همچنین از هر گونه مجادله بپریزد و بدانید هر کار نیکی که انجام دهید خداوند بزرگ از آن آگاه است و برای حج توشه برگیرید و بهترین توشه سیانت نفس و است پس ای اهل خرب حرمت فرمان های مرا نگاه دارید اگر چنانچه هنگام حج از خداوند روزی دنیوی طلب کنید باکی نیست پس هنگامی که از صحرای عرفات برگشتید در مشعر الحرام یاد خدا بسیار کنید یادش کنید به خاطر راه آرامشی که نشانتان داده است زیرا قبل از آن گمراه و حیران بودید پس بازگردید از همان راهی که همه باز می گردند و از خداوند بزرگ طلب بخشش کنید که او آمرزنده و باگزشت است و چون حج خود را تمام کردید خداوند بزرگ را همچون زمانی که پدرانتان را یاد می‌کنید یاد کنید بلکه سزاوار است بهتر از آن یاد کنید و ای از مردم هستند که می‌گویند گویند را به ما فقط در دنیا نعمت ارزانی دار پس در آخرت بهره ای برای آنها نیست اما ایده دیگری از آنها میگویند ربنا لنا فی الدنیا الدنيا و في الاخره حسنا و قدعذابا لا پروردگارا ما را هم در دنیا و هم در آخرت خیر و نیکی عطا فرما و از عذاب آتش در امان دار آنها از چیزی که خواستند بهره میبرند زیرا خداوند بزرگ به سرعت حساب را پرداخت می کنند و خداوند را در روزهای معینی در مراسم حج یاد کنید و اگر کسی این کار را در دو روز و یا بیشتر انجام داد چنان که پرهیزکار باشد مانعی ندارد پس حرمت خداوند را نگاه دارید و بدانید همه شما به سوی او محشور خواهید شد. ای پیامبر در میان مردم کسانی هستند که نظراتشان درباره زندگی دنیا موجب اعجابتون می شود. در حالی که خدا نیز به نیت خیر خود گواه میگیرند مراقب باش که آنها کین توزترین دشمنان هم. چون از نزد تو بازگردند، بیدرنگ در روی زمین مشغول تباهی و فساد می شوند و کشزارها و دامها را نابود می کنند، بدان که خداوند تباهی و فساد را دوست ندارد. و چون به چون این کسی گفته شود از خدا بترس، ترس، چنان خودخواه است که خودخواهی و قدرت تلبیش وجودش را به گناه می کچاند. بدون شک جهنم او را کافی است و چه جایگاه بدی است این جهنم و انسانهایی هستند که تمام وجود خود را تقدیم خداوند می کنند تا خوشنودی او را به دست آورند حالان که خداوند بزرگ بر بندگانش بسیار مهربان است ای کسانی که به حقایق ایمان دارید همگی خالصانه به راه تسلیم و اطاعت وارد چوید و پا جای پای شیطان مگذارید زیرا او برای همگی شما یک دشمن واقعی است و اگر به لغزش و خطا افتادید آن هم پس از آنکه حقایق روشن را دریافتید بدانید بر ما ضرری نیست زیرا خداوند پیروز و حکیم است آیا اینان؟ منتظر آنند که خداوند با فرشتگانش زیر چتری از ابر آسمان بیایند و کار یکسره شود بدانید که خداوند مرجع همه کارهاست ای پیامبر از بنی اسرائیل سوال کن چقدر ما تا به حال آیات روشن و دلایل محکم برای آنها آورده‌ای چنان که کسی نعمت دادهاش را به نقمت و تباهی تبدیل کند بداند که عقوبت خداوند بزرگ بسیار سخت است زندگی دنیا برای اهل کفر آرایش کرده جلبه می کند همانهایی که اهل ایمان را مسخره می کنند اما بدانید آنهایی که پرهیز کارند فریب زینت دنیا را نمیخورند و در روز قیامت در مرهدهی بالاتر از ناسپاسان قرار گرفتند و خداوند بزرگ هر کس را سلاح بداند بدون حساب به او برکت و روزی میبخشد. مردم از یک ریشه و امتند و خداوند به سوی آنها بشارت بشارددهنده و برحزردارنده مبعوز کرد و همراه آنان کتاب حقی فرستاد تا آن کتاب میان مردم در مورد آن چیزهایی که اختلاف می داوری کند. اما جز حسودانی که قبلاً صاحب کتاب شده بودند و حقایق برایشان روشن بود با آن مخالفت نکردند و خداوند بزرگ اهل ایمان را در مورد حقایقی که اختلاف می کردند به فرمان خود رهنمون کرد و این چونین است که خداوند هر کس را صلاح بداند به سوی راه درست و متعالی هدایت می پنداشتید که به همین راحتی وارد بهشت خدا میشوید. در حالی که آن سختی ها و مسائبی که بر گذشتگان شما رفته است بر سر شما نیامده است آنها سختی و رنج کشیدند و حتی متزلزل شدند تا جایی که بر و یارانش گفتند پس یاری خدا که خواهد رسید بدانید که نصرت و یاری خداوند نزدیک است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 ای پیامبر از تو میپرسند چه چیز را انفاق کنیم و در راه خدا ببخشیم بگو خیر و برکت را بر پدر و مادر و خیشان و یتیمان و درماندگان و مسافران وامانده از راه انفاق کنید و بدانید خداوند به آنچه که خالصانه میبخشید آگاه است. جنگ در راه خداوند بر شما مقرر شده است هرچند آن را دوست ندارید اما چه بسا چیزهایی که خوشایند شما نیست اما برایتان نتایجی نیک دارد و چه بسا چیزهایی که دوست دارید اما نتایج آن برایتان شر و پلید است و خداوند داند و شما آگاهی ندارید ای پیانبر، درباره جنگ کردن در ماه حرام از تو سوال می کنند. بگو جنگ در این ماه گناه کبیره است اما بازداشتن مردم از راه نجات بخش خدا و دامن زدن به کفر و ناسفاسی و جلوگیری از ورود مردم به مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش نزد خداوند گناهی بزرگتر است و فتنه مزردتر از قتل است آنها با شما می جنگند تا شما را از دین آرامش بخشتان دور کنند بدانید هر یک از شما از دینش برگردد و بی ایمان بمیرد بدون شک اعمال و دستاورد چون افرادی در دنیا و آخرت تباخ شده و جاودانه در آتش خواهند بود کسانی که به حقایق ایمان دارند و کسانی که به خاطر رضایت پروردگار از همه چیز دست شستند و هجرت کردند و جهاد کردند بی تردید همانها امیدواران به رحمت بی پایان خداوندند و خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و با است ای پیامبر از تو در شراب و قمار سوال می کنند در آنها آلودگی و گناهی بزرگ است هرچند برای مردم منافعی نیز در بردارند. اما ضرر آنها بیشتر از نفعشان است. همچنین از تو میپرسند چه چی چیز را انفاق کنید؟ بگو اف و گذشت را انفاق کنید و توسعه دهید. و اینچنین خداوند بزرگ آیات و نشانه را برای شما تبیین می کند. امید آنکه فکرتان را به کار بیاندازید و ما برای آرامش در دنیا و آخرت از تو درباره چگونگی رفتار با یتیمان و انبال آنها میپرسند. بگو اقدام به اصلاح امور آنان خیر و نیک است. و اگر با آنان همسو شوید و زندگی کنید چون برادران شما هستند. مراقب باشید که خداوند انسان و کلاهبردار را از نیکوکار خیراندیش باز میشناسد و اگر خدا بخواهد میتواند تواند به خاطر عملکردتان بر شما سخت بگیرد بدانید که خداوند پیروزمند و حکیم است و با زنان مشركه تا وقتی که ایمان نیاورده ازدواج نکنید. بدانید یک کنیز با ایمان به مراتب بهتر از یک زن آزاد و زیبای مشرکه است. که ظاهرش مورد پسند شما واقع می شود همچنین مردان مشرک نیست تا ایمان نیاوردهند زنان مؤمنه را به عقدشان در نیاورید بدانید که یک بنده ساده مؤمن به خدا به مراتب بهتر از مشرکی است که مورد توجه و پسند شما باشد زیرا آنها شما را به سوی آتش می خانند. اما خداوند بزرگ به فرمانش شما را به سوی بهشت و آمرزش می خانند. و خدا این چونین آیات و نشانهایش را برای مردم بیان می کند امید آنکه که و از تو درباره در باری حیز زنان می پرسند بگو حیض یک رنج طبیعی است در ایام هیز با زنان هم بستر نشوید تا آنکه پاک شوند. و هنگامی که پاک شدند طبق فرمان خداوند از آنان بهرمند شوید همانا خداوند بزرگ، توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد. همسران شما کشزار با برکت شما هستند. پس هر زمان که خواستید با آنان هم بستر شوید و با رفتار و اثر نیک دستاوردهایی از پیش برای عاقبت خود زخیره کنید و حرمت خداوند را نگاه دارید. واتقو الله واعلموا انكم ملاقوه وبشری و بدانید که همه شما او را ملاقات خواهید کرد و ای پیامبر مژده به تمام کسانی که به حقایق ایمان دارند و خداوند را دستاویز قسمهای خود قرار ندهید تا به بحانه آن از اقدام به کار خیر و تقوا و اصلاح کار مردم باز بمانید و بدانید که خداوند بزرگ بسیار شنوا و داناست و خداوند شما را به خاطر قسم هایی که بی اراده می خورید نخواهد کرد بلکه شما را به نیت هایی که در سینه پنهان کرده اید معاخزه می کند و خدا بسیار بزرگ وارو و است با آن دسته که از زنانشان دوری می کنند و قسم میخورند تا با آنها نزدیکی نکنند چنان که قبل از اتمام چهار ماه به زندگی برگردند بر آنها باکی نیست و خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است و چنان که بر برطلاق کرده باشند بدانند که خداوند نسبت به گفتار و رفتارشان شنوا و آگاه است و زنان مطلقه از شوهر کردن خودداری کنند تا اینکه سه بار از حیز پاک شود زیرا خون حیز باعث می شود اگر خداوند فرزندی در رحم آنها خرق کرده باشد کتمان نکنند و زنان بدانند چنان که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند شوهرانشان برای رجوع به زندگی مویقتر از دیگرانند البته اگر خواهان زندگی با تفاهم باشند و بدانید که زنان حقوق مشروعی برگردن مردان دارند همچنان که مردان از امتیاز سرپرستی برخوردارند و خداوند بزرگ بر همه چیز توانا و آگاه است و طلاق رجعی تا دو بار صحیح است بدین معنی که در هر بار مرد میتواند یا به زن رجوع کند و با خوشی و سازگاری زندگی کنند و یا به نیکی و خیراندیشی جدا شوند و بر شما حلال نیست که به زور چیزی از مهریه آنان کم کنید مگران که بترسند مبادا حقوق یک دیگر را که خداوند امر کرده است رعایت نکرده باشند که اگر چنین باشد در این صورت سزاوار است که زن بخش از مهر خود را برای اخذ طلاق ببخشد این مقررات دین خداست از آن سرپیچی نکنید و هر که از عوامل خداوند سرپیچی کند بدون شک از ستمکاران است و اگر مردی همسر خود را برای سومین بار طلاق داد دیگر آن زن برایش حلال نیست مگر اینکه آن زن با کس دیگری ازدواج کند و چون که طلاق گرفت با کی نیست که دوباره به عقد شوهر اولش درآید به شرط آن که از این پس آگاهانه احکام و حدود الهی را رعایت کنند و این مقرراتی است که خداوند برای مردم دانا بیان می کند و اگر زنانتان را طلاق دادید باید تا اتمام ادده آنان یا آنها را محترمانه در خانه نگهداری کنید و یا به نیکوترین بچی رهایشان سازید و سزاوار نیست که آنان را به زور و آزار در خانه نگهدارید تا تعدی کنید و اگر کسی چنین رفتاری کند بدون شک به خودش زور کرده است و آیات خداوند را به تمسخر نگیرید و یاد آورید نعمتهایی را که به شما عطا کرده است و بدانید به همان کتاب و حکمتی که بر شما نازل کرده است موعزتان می کند. حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و بدانید که خدا بر همه چیز آگاه است و هرگاه زنانتان را طلاق دادید و ادهی آنها هم تمام شد نباید مانع ازدواج مشروع و دلخواه آنها با دیگران شدید و هرکس از شما که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد از این دستور پند گیرد زیرا برای تسکیه نفوس شما بهتر و پاکتر است و خداوند امقه احکام را می داند و شما نمی دانید و مادران چنان که بخواهند دو سال تمام به فرزندان خود شیر دادند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخارگی را تکمیل کند و بر پدر نوزاد است که خوراک و پوشاک مادر را در حد متعارف تأمین کند زیرا هر کسی به قدر تواناییش مکلف است و متوجه باشید که نه مادر برای نگهداری طفل آزار ببیند و نه پدر بیش از حد متعارف در فشار قرار گیرد و اگر چنانچه نوزاد پدری نداشت وارث او بر این امور اقدام کنند و اگر پدر و مادر هر دو با رضایت هم دیگر تصمیم گرفتند تا طف را از شیر بگیرند بر آنها باکی نیست و حتی اگر خواستید زن دیگری در قبال دستمز به طفتان شیر دهد باز اشکالی ندارد حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و بدانید که خدا به عمل بیناست کسانی از شما که می میرند و همسرانی باقی می گذارند همسرانشان چهار ماه و ده روز صبر کنند و چون این مدت به سلامت، اگر آن زنان اقدام به کاری پسندیده و مجاز کنند به شما ارتباطی ندارد. و بدانید که خداوند بزرگ نسبت به عمل کردتان آگاه است و همچنین بر شما گناهی نیست اگر محترمانه و با کناهی از آنان خواستگاری کنید و یا اینکه نیت ازدواج به آنها را در دل داشته باشید زیرا خداوند نیت شما را نسبت به آنها میداند اما پنهانی به آنان قرار ازدواج نگذارید بلکه برای حفظ احترامشان نیت خود را محترمانه اظهار کنید به هر حال تا عده آنها تمام نشده اقدام به ازدواج نکنید و بدانید که خداوند از آنچه در دل پنهان داشته آگاه است پس از خدا بترسید و بدانید که او بسیار بخشنده و بردبار است و باز بر شما گناهی نیست اگر زنانی را که با آنها هم بهستر نشدهید و مهری نیز تعیین نکرده اید، طلاق دهید مشروط بر آنکه هدیه در خور و شایسته به آنها عطا کنید تمانگر به قدر توانش و انسان تنگ دست نیز به قدر ووسش و این کاری است که شاگسته نیکوکاران است و اگر مهری تعیین کرده ای ولی با آنان نزدیکی نداشته اید هنگام طلاق باید نصف مهر را بپردازید مگر آنکه خود زن و یا کسی که بر این ازدواج ولایت دارد مهر را ببخشد و اگر با چنین وضعیتی مهر بخشیده شود به تقوا و نیکوکاری نزدیکتر است و احسان و نیکی را نسبت به هم فراموش نکنید زیرا خداوند به عمل کردتان بیناست و در مورد نمازها به ویژه نماز میانه کوشا باشید و مطیعانه برای عبادت خداوند بیان کنید و اگر در موقعیت امنی نبودید و بیم خطر میرفت نماز را در حالی که پیاده و یا سواره هستید به جا آورید اما هنگامی که در محیط امنی بودید نماز را آنگونه که شاگسته است به جا آورید زیرا خداوند چیزهایی را که نمیدانستید به شما تعلیم داد. و آن دسته از مردان شما که در آستانه مرگ قرار گرفتند باید نسبت به همسرانی که از خود به جا و وصیت کنند که بعد از مرگشان تا یک سال هزینه زندگی آنها را پرداخت کنند و از خانه اخراجشان نکنند. و اگر خود خارج شدند و درباره زندگیشان تصمیم شایسته گرفتند به شما افتباطی ندارد و خداوند توانا و حکیم است و زنان مطلقه حقوق مشروعی دارند و این حق برگردن مردان خداترس است و این اینچنین خداوند بزرگ آیاتش را تذکر می کند امید آنکه تعقل کنید آیا آن جماعت هزاران نفره را ندیدی که برای فرار از مرگ خانه و کاشانه خود را رها کردند اما خداوند به آنها گفت بمیرید و سپس دوباره زندشان کرد زیرا خداوند بزرگ دریای فضل و رحمتش را بر مردم جاری می کند اما اکثر آنها سپاس گذار نیستند و در راه خدا بجنگید و بدانید که او بسیار شنوا و آگاه است من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یغمد و یبسط و الیه ترجع کیست که در راه رضایت خداوند جانم را به عنوان قرض الحسنه تقدیم کنند تا خدا نیز پاداشی چند برابر عطایش کند و بدانید که این خداوند است که روزی برخی را محدود و برخی را گسترده مقدر می می‌کند در هر حال به سوی او باز خواهید گشت آیا ندیدی اشراف قوم بنی اسرائیل بعد از موسی رو به یکی از پیامبران کردند و گفتند برای ما فرمان روایی این کن تا تحت رهبری او در راه خدا جنگ کنیم و او گفت اگر جنگ بر شما مقرر شد ولی از آن سرپیچی کردید چه؟ گفتند چرا سرپیچی کنیم در حالی که ما را از سرزمین من بیرون کردند و از فرزندان من دور افتاده ایم و هنگامی که اجازه جنگیدن به آنها داده شد به جز اندکی همه از جهات سرپیچی کردند و خداوند بر حال ستمکاران آگاه است. و پیامبرشان به آنها گفت: خداوند تالوت را به عنوان فرمانروای شما انتخاب کرده است. گفتند: او فرمانروای ما باشد؟ ما که به فرمانروایی شایسته تر از اوییم زیرا تالوت دارایی و اموال زیادی ندارد. و پیامبر گفت: خداوند امتیاز فرمانروایی را به او داده است. زیرا دانش و قدرتش را افزوده است و بدانید خداوند فرمان را به هر که صلاح بداند عطا میکند و او آگاهانه در همه جا حضور دارد و پیامبرشان گفت بدانید که نشانه فرمانروایی تالوت اهدی است که در آن راز آرامش و دستاورد خاندان موسی و هارون قرار دارد که از جانب خداوند توسط فرشتگان به سوی شما حمل خواهد شد و در این راز نشانه است برای شما اگر به حقیقت ایمان داشته باشید و هنگامی که تالوت با سپاهش برافتاد به آنان کرد و گفت خداوند شما را به نهر آبی آزنایش می کند پس هر که بفاحت از آن سیراب شود از من نیست و اما کسی که از آن نخورد و یا به قدر اندکی به از من است اما همه به جز تعداد اندکی از آن آب سیراب شدند پس او و افراد با ایمانی که از این امتحان سربلند بیرون آمده بودند از نهر گذشتند ادهی از آنها گفتند تعداد ما اندک شده است و امروز توان رویارویی با سپاه جالوت نیست اما عدهای دیگر که میدانستند، روزی باید خداوند را ملاقات کنند گفتند اگر خدا بخواهد چه بسا گروه اندکی بر جماعت بسیاری غلبه کنند و بدون شک خداوند با کسانی است که صبورند و استقامت میبرزند و هنگامی که مقابل جالوت و سپاهش قرار گرفتند گفتند خدایا به ما صبر و استقامت عطا کن و ما را ثابت قدم و استوار گردان و بر قوم ناسپاسان پیروز کن پس به خواست خدا آنها را در هم کوبیدن و جالوت به دست داوود کشته شد و خداوند امتیاز فرمان و حکمت و دانایی را به او عطا کرد و آنچرا که صلاح می دانست به او تعلیم داد و اگر خداوند برخی را توسط برخی دیگر شکست نمیداد، بیشک تباهی و نکبت زمین را فرا می گرف. بدون تردید خداوند بزرگ فضل و کرمش را به جهانیان ارزانی می‌دارد اینها همه های خداوند است که به حق بر تو می‌خوانی زیرا بدون شک تو از پیامبران هستی و برخی پیامبران را نسبت به برخی دیگر برتری دادی خداوند با برخی از آنها سخن گفت و برخی دیگر را به درجاتی امتیاز داد و به عیسی پسر مریم توانایی انجام معجزاتی را دادیم و او را توسط روح القدس یاری کردیم بدانید اگر خدا میخواست نمیگذاشت مردمانی که بعد از آنها آمدند با آنکه نسبت به عوامر الهی آگاه شدهاند به جنگ با یکدیگر برخیزند اما خدا کسی را به اطاعت مجبور نمیکند. و مردم را برای انتخاب راه سعادت آزاد می‌گذارد سرانجام آنها با یکدیگر اختلاف کردند ادعای به حقایق ایمان آوردند و ادعای کفر و ناسفاسی پیشه کردند و باز اگر خداوند می‌خواست آنها به جنگ با یکدیگر بر نمی‌خواستند اما خداوند به اختیاری که به انسانها داده پایبند است و آنگونه که صلاح بداند عمل می‌کند ای کسانی که ایمان آورده اید از هایی که بهرمندتان کرده ایم به دیگران انفاق کنید و از که روزی بیاید که نه تنها در آن فرصت داد و ستدی نیست بلکه هیچ دوستی و پادرمیانی و شفاعتی هم کار نمی باشد و بدانید ناسپاسان کفر پیشه همان ستمگران هست.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 وَلَا يَعُودُهُ حِفْفُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الله خداییست که جز او هیچ خدایی نیست زنده و پاقینده و آگاه است. هیچ خواب سبک و سنگینی او را فرا نمیگیرد و اون که در آسان ها و زمین است از آن اوست. پس کیست که بتواند بدون اجازه اش شفاعت کند هموست که از گذشته و آینده مردمان باخبر است هیچکس به علم او اقاطه پیدا نمی کند مگر به قدری که خودش بخواهد تخت فرماندبایش چنان وسیع است که همه آسمان ها و زمین را در بر گرفته در حالی که حفظ آنها بر او سخت نیست و خداوند بلند مرتبه و بزرگ است الله هیچ اجباری در پذیرش دین نیست زیرا راه رشد و سعادت از انحراف و تباهی کاملا مشخص شده است. پس هرکس به تاغوت پشت کند و به خدا ایمان بیاورد بدون تردید به ریسمان نجات بخشی دست یافته که هرگز پاره شدنی نیست. و بدانید که خداوند بزرگ بسیار شنوا و آگاه است. خداوند یار کسانی است که به حقایق ایمان دارند و به انسان آنها را از تاریکی های جهل و تباهی به نور حقیقت هدایت می‌کنند اما آنها که کفر و ناسپاسی پیشه کنند یاور آنها طاغوتی است که آنها را از نور هدایت خارج کرده و به ظلمات جهل و تباحی می‌کشاند تردید همه آنها همواره در آتش دوزخ خواهند بود آیا به یاد نداری نمرودی را که خداوند پادشاهی به او عطا کرده بود مغرورانه با ابراهیم گفتگو می‌کرد و هنگامی که ابراهیم به او گفت خدای من کسی است که زنده می کند و میمیراند. و نمرود گفت من هم زنده می کنم و می‌میرانم و ابراهیم جواب داد خداوند خورشید را از مشرق بیرون میآورد. تان را از مغرب بیاورد و در این هنگام نمرود گفت پیشه مبهود ماند زیرا خداوند بزرگ ستمکاران را به راه برتری هدایت نمی کند و آیا بیاد نداری ماجرای کسی را که از یک روستای ویران شده که صحفهای خانه خانهایش فرو ریخته بود می و می گفت از کجا معلوم که خدا می تواند این مرده ها را زنده کند بیدرنگ خداوند جانش را گرفت و او صد سال مرده بود سپس زندهش کرد و به او گفت چه مدت در اینجا هستی؟ جواب داد یک روز یا کمتر گفت نه صد سال اینجا بوده ای. به غذا و آبت نگاه کن فاسد نشده است اکنون به اولاق خود بنگر برای اینکه تو را عبرت مردمان قرار دهیم استخانهای اولاوت را بنگر که چگونه آنها را دوباره به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آنها میپوشانیم پوشانیم و هنگامی که تمام این بر برو آشکار شد گفت دانستم که خدا بر هر کاری تواناست. است. هنگامی که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می‌کنی خدا گفت آیا به این امر باور نداری ابراهیم جواب داد چرا باور دارم فقط میخواهم دلم آرام گیرد خدا گفت چهار پرنده را بردار آنها را قربانی کن و گوشتشان را با هم بیامیز و هر قسمتی از آن را بر بلندی کوی قرارده سپس آنها را به سوی خودت فراخان بیدرنگ به سوی تو شتابان پر میگوشایند و بدان که خداوند توانا و حکیم است مسئله آنها که انوالشان را در راه خدا انفاق میکنند مثل دانه است که هفت خوشه از آن بیرون زند در حالی که در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد دو یا چند برابر میکنند و خداوند گشاگش دهنده و آگاه است پاداش آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق میکنند در حالی که منت نمیگذارند و آزار نمیرسانند با خداوند بزرگ است و نباید هیچ خوف و یعص و اندوهی به خود راه دهند سخن پسندیده و اف و گذشت بهتر از صدقه است که با آزار تو باشد و خداوند بینیاز و بردبار است ای کسانی که ایمان آورده اید صدقات خود را با منت گزاری و آزار تباه مکنید و مانند کسی نباشید کم اموالش را از روی ریاکاری انفاق می کند در حالی که نه به خدایمان دارد و نه به روز جزا مسئله چون این شخصی مانند سنگ است که خاک بر روی آن نشسته باشد و ناگهان باران تون ببارد و خاک را بشو و سنگ را بی هیچ محصول و دستاوردی باقی گذارد. چون این کسانی از عمل بهره ای نخواهند برد و خداوند جماعت ناسپاسان را مشمول هدایتش نخواهد کرد. و مسئل کسانی که با تمام وجود اموال خود را در راه رضای خدا انفاق می کنند مسئل باقی است که بر زمین بلندی قرار گرفته که هرگاه باران بر آن ببارد محصولش دوچندان می شود و اگر باران بسیار بران نبارد حتماً باران اندک خواهد دید. بدانید که خداوند نسبت به عملکردتان بیناست آیا در میان شما کسی دوست دارد باقی از خرما و انگور که نرها در پای درختان جاری است داشته باشد مشروط به اینکه در پیریش هنگامی که سخت ایالواره است گردبادی کوبنده و آتشین بیاید و تمام آنچرا که دارد تباه کند و شعلور سازد؟ خداوند بزرگ آیاتش را اینچنین برای شما بیان می کند امید آنکه که تفکر کنید ای کسانی که به حقایق ایمان دارید از دستاوردهای پاکیزه خود و از نعمت‌هایی هایی که در زمین برایتان خلق کرده انفاق کنید و برای انفاق کردن به سراغ قسمت های بد و ناپاکی که تا خودتان جز به کراحت حاضر بگرفتن آن نیستید نروید و بدانید که خداوند بزرگ بی و وابل ستایش است. و در هنگام انفاق شیطان شما را از فقر و توی دستی و به کارهای زشت بامی دارد در حالی که خداوند شما را به آمرزش خویش و افزونی نعمت وعده میدهد. همانا خدا گشایش دهنده و آگاه است. بت الحكمت من شاء ومن یبت الحكمة فقد أوتی خیرا كثیرا وما یذكر إلا ألو الألباب خداوند حكمتش را به هر که بخواهد عطا میکند و بدانید به هر کس كه حكمت عطا شود بدون شک خیر و برکت زیادی به او داده شده است و این نکته را کسی در نمیابد مگر خردمندان و بدانید هرچرا که انفاق و یا نعذر کردید خداوند بر آن آگاه است و برای ستمکاران هیچ یار و یاوری وجود ندارد اگر صدقات خود را آشکارا دهید کار خوبی کردید اما اگر آنها را به صورت پنهانی به فقرا دهید برایتان بهتر است و باعث از بین بردن گناهان شما می شود و خداوند بر عملکردتان آگاه است. ای پیامبر، هدایت آنها به عهده تو نیست بلکه این خداست که هر کس را صلاح بداند هدایت می کند و بدانید هر خیری که برسانید در حقیقت به خود رساندهید و فقط برای خوشنودی خدا انفاق کنید زیرا هرچه در این راه انفاق کنید پاداشش به طور کامل به شما باز می گردد و هیچ ظلم و ستمی بر شما نخواهد رفت و این صدقات از آن است که در راه خداوند در تنگنا قرار گرفتند و در حالی که توانایی طلب روزی برایشان فراهم نیست چنان خیشتندار و با عزت نفسند که افراد ناآگاه آنها را بینیاز تصور می کنند اما تو ای پیامبر آنها را از چهره هایشان می شنازید. زیرا آنها به اصرار از مردم چیزی نخواهند و بدانید آنچه از خیر و خوبی انفاق می خداوند بر آن آگاه است کسانی که اموالشان را در شب و روز و آشکار و پنهان انفاق می کنند پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است و باید هیچ خوف و یعص و اندوهی به خود راه ندهند آنهایی که ربا در قیامت همچون کسانی برمیخیزند که بر اثر وسوساگ شیطان دیوانه شدند و این به آن جهت است که گفتند معامله هم مثل رباست در حالی که خداوند معامله و داد و ستد را حلال کرده است و ربا را حرام پس هر کس که موعزه خدا را شنید و از ربا خاری دست برداشت خداوند گذشته را می بخشد و کارش به خدا واگذار می شود اما اگر کسی دوباره به ربا خاری مشغول شد بدون تردید اهل جهنم است و آنها در آتش می مانند. خداوند ربا را از بین میبرد و پاداش صدقات را افزایش میدهد و خدا هیچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد. بدانید کسانی که حقایق را باور کردند و عملکردشان سراسر خیر و خدمت است و نماز به پای میدارند و ذکات اموالشان را پرداخت می کنند بدون تردید پاداش آنان نزد پروردگارشان محفوظ است و نباید هیچ خوف و یعس و اندوهی به خود راه دهد ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و آنچه از مطالبات ربا باقی رها کنید اگر دارای ایمان حقیقی هستید و اگر چنین نکردید در واقع به خدا و پیامبرش اعلان جنگ دادید و چنان که توبه کنید سرمویتان از آن خودتان در این حال نزل می کردید و نزل می بر شما رفته است و اگر شخص بدهکاری تنگ دست بود باید به او مهلت داد تا توانگر شود. و کاش این نکته را در می که اگر به او ببخشید برای شما بهتر است واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بدر از روزی که به سوی خداوند باز خواهید گشت و به هر کس نتایج دستاوردش داده شوند در حالی که به آنها ستم ربا نمی گردد ای اهل ایمان هرگاه خواستید وام مدتداری را به یکدیگر دهید آن را مکتوب کنید و باید نویسنده از میان شما سند را درست و عادلانه بنویسد و نویسنده همچنان که خداوند او را تعلیم داده است از نوشتن سند امتناع نورزد. و این بدهکار است که باید متن را به نویسنده املا کند و از خدای پرورنده خود پروا داشته باشد و چیزی را کم نکند و اگر بدهکار کم خرد و یا صغیر بود و یا به هر علتی نتوانست متن سند را املا کند پس باید ولی و سرپرست او از روی عدالت به این کار اقدام نماید و دو شاهد از میان مردانتان گواه گیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که مورد توافقتان است شاهد باشند تا اگر یکی فراموش کرد دیگری به یادش آورد و شاهدان هنگامی که دعوت شوند نباید از شهادت دادن امتناع ببرزند و از نوشتن نکات ریز و درشت این بدهی ناراحت نشوید زیرا اینگونه نوشتن نزد خداوند آدلان برای شهادت روشنتر و برای جلوگیری از شک و تردید موثرتر است و اما برای داد و ستد نقدی که دست به دست می دهید و میگیرید لزومی نظومی نیست و چون معامله می کنید، شاهدی برگیرید و نباید هیچ گونه زرری به نویسنده و شاهد وارد شود. که اگر چنین کنید کار زشت و زنندهی مرتکب شده اید. و الله و الله والله بكل شيء به حرمت فرمان خدا را نگاه دارید زیرا اوست که به شما تعلیم میدهد و خداوند بزرگ بر همه چیز آگاه است و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید و نوشتن سند میسر نبود باید چیزی به گرو داده شود و اگر به یکدیگر اطمینان داشتید پس باید بنشکاری که امین شمرده شده است امانت را به موقع پرداخت نماگد نماید و از خداوند پرورنده به و شهادت را کتمان مکنید زیرا کسی که شهادت را کتمن کند قلبش گناهکار است و خداوند بر عمل کردتان آگاه است آنکه در آسمان و آنکه در زمین است از آن خداوند بزرگ است و بدانید هر چیزی را که در وجودتان پنهان کنید و یا آشکار سازید خداوند شما را به دان بازخواست می پس هر که را صلاح بداند میبخشد و هر که را سلاح بداند عذاب می و خدا بر هر کاری تواناست پیامبر خود به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد بلکه همه مؤمنان به خدا و فرشتگان خدا و کتاب ها و پیانبرانش ایمان آوردهند. ما میان هیچ کدام از پیامبران خدا فرق نمیگذاریم. و آنها گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگاه را ما آمرزش تو را خواست داریم. زیرا سرنوشت و سرانجام ما به تو ختم می شود. خداوند هیچ کس را مکلف نمی مگر به قدر طاقتش دستاوردهای نیک هر کس از آن خود اوست و دستاوردهای پلیدش به زیان اوست پروردگارا اگر غفلت کردیم و خطاکار بودیم ما را معاقض مکنیم و آنگونه که بر پیشینیان ما تکلیف سخت و سنگین تعین کردیم تکلیف طاقت فرسا بر دوش ما منه پروردگارا ما را به آن که نداریم اشنا ندارین مکلف مکن و ما را ببخش و بیامرز و از ما درگذر گذر که تو مولاگ مایی پس بر گروه پاسان کوف پیشه پیروزمان گردان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم الله خداوند بلند مرتبه خاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم